ناتنز چه شهر زیبایی است. در دامنه کوه قرار دارد. بله ما الان در شمال شهر اصفهان هستیم. نتنز، بین کاشان و اصفهان قرار دارد. آیا ناتنز هم یک شهر قدیمی است؟ بله قدمت این شهر به دوره قبل از اسلام میرسد. شهرت این شهر به خاطر چیست؟ این شهر به خاطر آب و هوای خنک و مطبوع و محصولات کشاورزی شهرت دارد. آیا نتنز هم مثل اسفهان یک شهر صنعتی است؟ نه، اما در اطراف این شهر کارخانه غنیسازی اورانیوم وجود دارد. در این باغ های سبز چه میوه هایی تولید می شود؟ در نتنز و به طور کلی استان اصفهان سیب، هلو، انگور، پسته، بادام و گردو تولید می شود. اما میوه معروف نتنز گلابی است. پس این شهر میوه های متنوعی دارد؟ بله، علاوه بر میوه ها گندم جو سیب زمینی پیاز و انواع دانه های روغنی نیز در این شهر تولید می شود